جلسه 28 مذرسایب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و السلام نزاع بین اصولی و آیا برمیگرده به مسائل فری یا به مسائل اصلی حقیقت اینه که اختلاف اخباری و اصولی در مسائل فری و در کیفیت استنبات احکام و این اختلاف به اصول اقاید و اصول دین و اصول مذهب نمیگرده. در رابطه با بروعات فقی اخباری قائل به حرمت اجتهاده اصولی قائل به جواز بلکه حجوب اجتهاده به نهوه اینی برای بعضی ها و کفایی برا نوعه شون. و این تنها مسئلهی میشه که اینها اختلاف دارن و اصاسی ترین مسئله اختلافیه که همون که و این که به بهانی و امده ترین مسئله که اختلافی بین اصولی و اخباریه این مسئله اجتهاده صائر مسائل برمیگرده به همین مساله و حالا متعلق اجتهاد چیه؟ دیروز گفتیم که در ماهیت اجتهاد اینها اختلاف داره به این معنا که اجتهاد در حکم مد نظر نیست بخاطر اینکه احدی از های ما میگه قائل به جواز اجتهاد در حکم نیستند بلکه اجتهاد در موضوعه یعنی استظهار موضوعات و استنباد موضوعات اخباری قایده به عدم جواز استظهار و استنباد و دیری اصولی قایده به استظهارات و استنبادات بنابراین مطلبی که اخباری قایده و امین استرابادی آورده اینها رو میشه به نظر و باحث ریاضی و طبیعی و فلسفی محض تفسیر کرد کما اینکه شراخ و محشین و محاسین همینطور تفسیر میکنند برگردیم به ریاضیات و طبیعیات و الهیات که از محل بحث و خارج میشه بنابراین اونها نزایی در ما نحن و ما ندارن و میشه این نزای اخباری رو برگردنیم به یک امری که مرتبط به اختلاف در توحری اجتماعات باشه ازا امین از ترابادی که شده به این علوم نظری دو قسم یعنی بعد از عبور از بدی و ضروریات ضروری یا تعقل از بدیات و نوبت میرسه به علوم نظری علوم نظری تقسیم کرده به دو قسم قریب به حس و بعید حس و هم کلمات خودش و هم کلمات سایر این و تابعینش استراب داره من حس مجموعین ها قاعدم به اینکه در موارد قریب به حس یعنی ماده قریب از حس باشه که اون چهار رسم از یقینیات رو میگیره میشه پر جمن قاعده به حدیت باشیم ولی در بعید از حس اصلا قاعده به حدیت نیستن. میشین توی تفسیر جنب و گفتیم این رو تنزیلش میکنیم به مسائل اصولی که اختلاف بین اخباری و اصولی محسوس باشه برای طلبه ها و این رو مقدمتاً گفتیم که اولون تقسیم میشه به سر علم حسی که از راه حس انسان پیدا کنه مثل رؤیت هلال، رؤیت دم رویت مید و امثال اینها خوش و تمام معنامین طریقیه دوم علم حسیه علم حدسی همون علم قریبه به حسه که همین از ترابادی داره میگه و تمام استظهارات که ثانبیت داره داخل درمین علم حدسیه یعنی محسوس نیست مثل مفهوم یک شرکیه که منطوبش محسوسه هم. ولی مفهومش محسوس نیست قریبه به حسه تمام ملاظمات ارفیه و عقلیه و, و مفاهیم و تمام تنبیه مناطها دلالت‌های اختزال تندی اشاره تمام این موارد بر به این قریب به حد میشه علم به اصطلاح اصولیین و قسم سوم میشه بعید از حد بعید از حد یعنی ما یتوقف علی استدلال و البرهان و انصالیم. اینها و از نظر علوم اعتباری گفتیم علم حسی قویتر و امتن از علم حدسی و علم حدسی هم از علم منطقی و عقلی برخلاف علوم حقیقیه که یقینا علم عقلی منطقی قویتر از علم حدسی و حدسی قویتر از علم حسی اون خاطر قائل به خطوهای در حسیات هم هستن این در جزوها قبل نمیشته بودیم ولی فرصت نیست همه رو محسن کلام دیروز این شد که در رابطه با این سئل ما میتونیم اون چیزی که به در این و اخباری میخوره و اختلافشون جوهرن برمیده به همین مسئله تقسیم کنیم ظهورات رو به سه ظهورات اولیه یعنی ظهورات حسی که داریم میبینیم و برای همه او از داره قید قابل انکاره دوم استظهارات یعنی همان ظهورات ثانویه که قریب به حسه و سوم استنباطات بنابراین تقسیم میشه ظهورات به سه قسم متدورس و مترتب بر اولی ظهور دومی استظهار و سومی استنباطه وقتی این حال قائل به تدریج و ترتیب باشیم یعنی اخباری و اصولی در اون اولی هیچ اختلافی ندارن یعنی زواهر رو جیت داره مشدود به اینکه زواهر بدیهی باشه حسی باشه اولی باشه و ضروری باشه یعنی هیچ مناغشهی در رابش نباشه و کلام تام باشه از حیث ظاهرش ولی در استظهارات و استنبادات اختلاف دارن استظهارات گفتیم فرورات سانویی نوع اخباری این بلکه همشون قائل به عدم موجیه از استظهارات یعنی فقیه حق استظهار ننمه ظهورات رو میگیره طبقش بطوام میده بلی به قاعد این میشه اشتحاد و اشتحاد حرام و برگشت اشتحاد به اشتحاد در تشخیص موضوعات آیا موضوع همونه که هم یا غیر اینه اخباری قائل به اینه که موضوع اثباتی عین موضوع سبوتیه یعنی اون چیزی که در لفظ عدل اومده مثلا الخمر و حرام این الخمر و حرام که موضوع اثباتیه همان موضوع سبوتی هم هست یعنی اینن مرادشان هم در مقام جعل همین خمره هیچ ارتباطی به اسکار و امثال این هم نداره مثلا خونس در فنیمت واجبه این قنیمت موضوعیت داره یعنی مقام اثبات قنیمت ما بوده در مقام سبوت هم همون لذا لذا اربای مکاسب خمس ترداره میگه قنیمت نیست جمود بر الفاظ دارن این لفظ باید باشه بدون اینکه چیزی رو ما استظهار کنیم یا استنباطش کنیم و سینه در استظهار سین سیرورت نه سین طلب به خلاف سینه در که سین طلب حالا اختلاف وقتی بین اخباری و اصولی منتقی میشه به این دو مقام دوم و سوم اختلاف محسوس میشه و مفید میشه و سمرات برش مترتب میشه ولی اگر بخوایم همون بحثی که امین از داره و دیگران تفریدش میکنن که منتهی میشه به قیاس و قیاس یا حسیه یا قیاس قریب به حسیه یا قیاس بعیدت حسیه اونها به در اصول نمیخوره نهایت ما در علم اصول اومدیم از طبیعیات و ریاضیات و الهیات و معنای اهم آوردیم مطلب رو میخوایم توضیح بدیم و بگیم آیا مطالب امین صحیح یا نصحیحه ولی اگر برگرده به این بحث ظهورات که یقیناً محل اختلاف شدید بین اخباری و اصولیه معلوم میشه از این سه قسم اسم اولی اختلافی درش نیست ولی در اسم دوم و سوم اختلاف قسم اسم سوم یقیناً اختلافه اسم دوم به جمله خلافیه حالا بحث ما دیروز در مقام سوم بود یعنی استنباطش ظهور استنباطی نه ظهور اولی و نه ظهور استزهاری استزهاری خوندیم که یک دقت رولفی میخواد و منتقل میشن استحصال و استزهار این سین در استنباط و سین در استحصال و استزهار چه نوع سینیه این در ادبیات آن خوندن در شعب کافی و اینها که سین بنه. بله، یعنی واقعا چون دیروز گفتم از ویروس‌ها نخوندن دیگه. سین در استظهار، سین سیغرت، سین در استنباد سین طلب یعنی یه مقدار واسطه بین ظهور اولی و ظهور استعمالتی این استحصال و استزار میگن سین سی رورد استحجرد یعنی سار هجرد در کتاب سرف ساده خوندید سرف ساده این همین مثال رو یادم این که زده سه جرتین ای سار هجر سیرورته یعنی این ظاهر نبود سار ظاهرن این مسئله برای عوامالناس ظاهر نبود ما که بالای منبر مسئله رو گفتیم سار ظاهرن نه این دینا خودشون برن در حوزه اینو دنبالش بگردن و براشون ظاهر بشه نه بدفی نبود ساندی بود منتها با ادناتعمالی فهمیدن سه جره پیل ای سه را هجره. حالا استظهار یعنی سه را ظهور بدوی نداشت ظهور سانوی داشت منتها ارفی بود زود سیرورت پیدا کرد این حالا تو جزبه های ابروز نوشتم همین مطلب تو جزبه های ابروز هست از صفحه 100 تا 115 خوب آقایونی جزبه ها رو بخونن این جزبه ها و تمام کلماتش و حکمت نوشته شده یعنی با دقت نخونید به عمقش نمیدسید ولی سینه در استنباط سینه طلبه که نیاز به علم آموزش تعلام حوزه و امثال اینها داره استنباطه این آقای خویی میتونه استنباط کنن و ایلان دومی استظهار و استحصال اون ساره ها در مرحله دوم ولی مرحله سوم استنباطه و قاعده کلی اینه که در باب استفال این علف و سین و ت برای چی اومده قاعده کلی اینه که اینا مقدماتش بوده هر کاری رو من بخوام انجام بدم، نیاز به مقدماتی و کارهایی و سعی و تلاش و کوشش داشته باشه نه چه طول میکشه پنج شیش ده روز یک سال دو سال طول میکشه مثلا استنباط احکام ده سال حد نمید طول میکشه این ده سال من چطور بفهمونم؟ با الف و سین و تا می فرمونیم وعا مالهو یعنی هبه کرد ولی استا هو یعنی با سعی با تلاش و امثال اینا نتج زید استن تج زید این الف و سین و تا برانکه این مقدماتی داشته اسبابی داشته عواملی داشته اینا رو ما تهیه کردیم لذا بعیده بعید از حسه وید از حص عوامه پس ظهور یا بدوی یا ظهور سانویه از باب سیرورت یا از باب استنباط و نیاز به سعی و تلاش و طلب و امثال اینها داره لذا در جزوه نوشتیم سینه در استصال سینه سیرورته و سینه در استنبات سینه تلبه در این مثال ننوشتم مثال دیگه براشت زدم از یه باب دیگه از باب خمس برای مثال دادم که اگه وقت باشه این روز میگه. اینها رو با تأمل بخونید اینا چیز حرفای مفت نیست ما بیایم بگیم نه این انسانن. چیزی که در ادبیات عرب هست واقعیت هم داره منتها رو قفلت اهمیت بهش ندادیم مونده در اون ته ازهان که نیاز به این داره که کاوش کنن آقاییم بیارم بیارن, بیارن وقتی اختلاف اخباری بنا باشه با اصولی جوهری باشه هم در اون استنباطش خلافه هم در اون سیروبتش به خاطر که هر دو استفاده در موضوعه و این اخباری قبول نداره اخباریم که خمس در قنیمت اربای مکاسب برای چه خمس داشته باشه کاری به روایاتش نداریم ما در آیه شریفه که قنیمت اومده جنگی خمس داره ولی عرباه مکاسر ما از این آیه لذا خمس یک اصل قرآنیه در عرباه ماسب و یک اصل سنتیه در عرباه مکاسب اخباری میگه سنتی و کتابی نیست حالا چه سمرهی برایش مترتب میشه کاری با اون سمرش هم نداریم بحث ما در استنباد بود حالا مثالهایی برای استنباد میخوام بزنم. از سرابایی کی استعلام به تو قبول کردی من دیگه در احیال پر جمله همیشه دارم میارم بخاطر این یقین نیست خود امینم نمیدونه چی داره میگه وقتی نمیدونه چی داره میگه خود سید اسمایل سر اخباری بزرگون میگه رو میخواد دیگه قهرانی میگه اینی از صلاوادیه میخواست بگه ما نمیدونیم چی میخواست بگه مهم نیست باوقت من فعل جمله در اون قسمت دومش هم میاد. فعل جمله بعد آن مونجیتش. حالا واقعا هستن یا نیستن نبیده. ولی در استنباط یقینا ناپیه. اینا هر چیزی از موضوع اثباتی خارج بشه قبول ندارم نداره. بنابر اینا مناسبات حکم و موضوع رو که قوام فقاهت فقیه بهشه قبول نند. یعنی مناسبات و موضوع اصلا اساس نداره در مکتبه خواهی جمود بر لفظ جمود بر لفظ بنابراین خیلی در فروات فقهی مؤثر میشه از نظری که اینها چه قائل میشن و اصولی چه قائل میشه ما داشتیم در مقام مثال مثال زدیم به موارد استنباط یعنی یک دقت قیل عرفی آیا اینها اوچیت داره یا نداره یعنی ظهورات استنباتی که قیل عرفیه قیل عرفیه قیل بدویه این ها حوچیت داره یا نداره رسول این قاعده به حوچیتش هم اخباری منکره یقینه. مثال ما این بود که در رابطه با ادراک رکعت در نماز جماعت قاعدا به اینکه انسان باید قبل از اینکه رفعه رحش من بشه به روکو برسی و اونهایی که قائل به سه هم اگه مسئله این بود اگر ما شک بکنیم یا یا به رکوع امام رسیدیم یا نرسیدیم چند نفر به اوره مراجعه کرد نیست 4 نفر 3 4 نفر یا که مراجعه نمیکنن عقب میمونن مثلا اینکه این کاروان داره میره طرف مشهد بعضیا هی نشستهن بعضی‌ها می‌خوان روزترم برسن بعضی‌ها بودن روزهای اول هی اشکال می‌کردن یا می‌گفتن چی میده نگفتن و نگم تا اینم که میگیم دنبالش نمیده یعنی مراجعه نباشی فایده نداره اگر ما واقعا در شعونات مادی زندگی خودمون یه کاری عقب بمونه تا چهار صبح بیدار می میداریم یقینا ولی برای کارهای مهم و خودمون نفیگیری نداریم ارورو مراجعه نکرده نباشیم بنابراین قصورات رو به گردن ما نندازیم این یه سلیغه پدریسه اونایی که زحمت بکشن میتونن بیان اونایی که زحمت نکشن اونا با آخرش فقط باید امضا بگیرن چیزی حاصلشون نمیشه در ارمه تا اگه ما شک بکنیم به امام جماعت در رکوع رسیدیم یا نرسیدیم بد حد از صلاته تصریحا گفته واظده چرا به خاطر این نماز نمیشه حکم به صحتش کرد ابدا نه به صورت جماعت و نه به صورت پرادا. بعضی ها به به سهتشن اونهای که بایده به سهتن میگن استصاب جانی استصحاب استصاب امام در روگو تا که من بهش برسن مبادرتا باید بگیم که استصاب متبونه به ارکانیه یکی از اون ارکان مهم وحدت موضوع متیقن با مشکوکه این یعنی اون موضوع که ما در اشترک اون باید قبلاً بهش یقین داشته باشیم و الان در شک داشته باشیم موضوع در باب استصحاب علاق اسمه. یا موضوع بسیط یا موضوع ملکنه موضوع بسیط مثل خیلی اسیزه. شک دارم در کرلیت ها استثاب میکنم شک دارم در ادالت استصحاب میکنم شک دارم در زوجیت می میکنم شک دارم در ملکیت استصاب میکنم شک دارم در همه چیز یعنی هر موضوعی و هر تصوری به ذهن شما برسه هر مقبولهی من میتونم اینها رو استصابش کنم از مقبوله های بعضی از موارد موضوع استصحاب بسید نیست مرکب مرکب از دو جز یا چندین جزه آیا استصاب در مواردی که موضوع مرکب باشه جاری میشه یا جاری نمیشه مشهور قائلین به استصاب قائل به جریان استصاب در موضوعات مرکبه هستند میگن موضوع مرکب با بسیر هیچ فرقی نداره و این صفحه که الان آقا یادداشت میکنن برای اینکه از یوزمها پیدا کنید صفیه صد و دو ببند البته صفیه صد و یک شروع میشه تا صفیه دو ببند حکم شریح محتاج به موضوع یقینه یعنی. حکم شهری برزی از موارد با عدد اثبات میشه برزی از موارد با استصاب احراز میشه نه اثبات احراز میشه و موضوع یا یا مرکب و موضوع مرکب مثال زدم در جزوه به موضوع حکم جواز تبلید موضوع جواز تبلید چیه؟ موضوعش متشکر از دو چیزه شخص مجتهد باشه و عادلم باشه هم اجتهاد به معنای مطلقش و هم ادالت در قمه و اساسش اگه اینها نباشه نمیشترم کرد. بنابراین موضوع مرکب از دو چیزه و دو جوهره، یکی اجتهاد یکی ادالت حالا این شخص و اجتحادشو رو میدونم از شمسه کسی شک در اجتحاد این شخص ندارم مخالف و موافق قایرم به این شرط مستهده در ادالت شک دارم اون جز ای که محرز بلرجدان که محرز اون جز ای که محرز نیست شک دارم استصاب میکنم استصاب میکنم اون ادالت گرام مشکوکه و بعد از اینکه ادالت رو با استصاب اثبات کردیم این تعبیر تا بیه من دقت کنن ما اجتهاد رو وجدانن میدونیم ادالت رو با استصحاب اثباتش کردیم یعنی تعبدیه حالا ادالت مگه قبلا بوده یا نبوده اونارو کار نداره ما حالت سابقه براش الان نمیگم به خاطر این استصحاب در جریانش یه شبهاتی هست اینطوری دارم میگم که این اجتهادش محور ضمن بلبلدام و ادالتش رو با استصال درست میکنه و بعد از زم این وجدان به این تأفد حسن موضوع مرکب و یترد تب و علیه هده جواز تغییب خطرمتر میشه این بگن موضوع مرکب که یک جزش با وجدان احراز میشه وجدانی جفت مستهده یقینه یکی با تأفد استصال میکنه به ادالتش شک دارم یقینا در سال وقت ادالت داری دارم شک دارم ادالت داره یا نداره استصاب بکنیم ادالت رو بنابراین در این مواردی که ادالت حالت صابقه داره استصاب جاری میشه و این موضوع مرکب محقق میشه و حوکی برش مترده میشه این یک مثال مثال دوم مثل ارث ولد عرص ولد مرکب موضوعش مرکب از دو چیزه یکی موت پدرش و یکی اسلام پسر موت پدر وجدانیه اسلام پسر با استصاب اثبات میشه که یقینا و تعبدن متعبید میشن به اینکه قبل از این که پدر بمیره این اسلام آورده و مسلمون بوده بنابراین عرض میبنه این دوتا مثال بود و مناقشاتی در این نوع استصاب هست نظام مشروع قائله به جریانش نیستن و در حالا که قائله به نماز بودن اونها قائلن به اینکه میاد اون جز دوم رو محققش میکنه و موضوع مرکب محقق میشه در خارج و حکم برش مترفه میشه. حالا در مواردی که موضوع مرکب مثل این مثال ها دو حالت داریم دو حالته در تمام موارد ترکب موضوع آخرش از ناینین نا یه ثابتی میگیم در چه موارد شده به اینکه موضوع مرکبه و در چه موارد قاعده به همه ترکبه اون ثابتر آخرش میگه ولی فعلا داریم میگیم اگر موضوع مرکب باشه دو حالت داره. حالت اول اینی که اجزا این موضوع یا تو جز این موضوع به نحو تفید یا مجموع یا اقترام ده شده باشه مثل اینکه شاهالبه بگید سر ابن عزت طمع ماوت الار ما اسلام العلم یعنی عنوان اجتماع اومده عنوان اجتماع اومده و ملاک ما این اجتماع پسر به خاطر از وقتی اسم میبره که این دو با هم انجام نمیشه حالا موت به در پیشانیه اسلام هم با استثنا ثابت میشه موضوع ما محقق میشه به خاطر عنوانی که منحوز بوده الان هر دو رو ما احراز کردیم یکی رو وجدانن و یکی رو تأخدن حالت دوم اینی که فکر متلطبه بر ذات دو جزئه نه بر عنوان اجتماع یا اقتران یا تأخور یا سب یا لهو یا عناوین دیگه بر ذات جزئه الان در همین مثال محل بحث ما اختلاف بین آی و دیگران در اینه که این ادراک رکعت موضوعش آیا ذات رکوع امام و ذات تکبیر معمومه یا نه عنوان قبلیته یعنی قبل از این که امام از سرش از رکوع برداره معموم بهش رسیده باشه آیا موضوع ادراک رکعت عنوان قبلیت که در روایت اومده یا نه ذات رکوع امام که محرز وجدان و ذات تکبیر و وصول معموم به رکوع که اونم با استثاب تأمین میشه کدوم میشه موضوع ادراک رکعت کدوم میشه در روایت اختلاف بین آی خوی و دیگه مرحوم آی قائل قایل بینی که موضوع ادراک عنوان قبلیت نه ذات ما کاری به ذات رکوع امام نداریم و کاریم به ذات تکبیر و رکوع و حصول معموم به روکو امام هم نداریم. عنوان قبلیت باید احراز بشه. ما کار به رکوع خارجی و حصول خارجی نداریم عنوان قبلیت باید احراز بشه و استصاب عنوان قبلیت رو برا ما احراز نمیکنه. به خاطر اینکه لازمه عقلیه لازمه عقلی بقا امام در روکوی نه که من بهش رسیده باشم عقل میگه و اگر لازمه عقلی باشه میشه از که مصبت بنابراین موضوع ادراک عنوان قبلیت عنوان قبلیت رو استصحاب اثبات نمیکنه چرا؟ چون این قبلیت لازمه عقلیه من اگه بگم امام در رکو مونده لازمه شنی که من حتما بهش رسیدم میگه عقل میگه ولی نمیگه ولی اونهایی که قاعدن به اینجه موضوع ذاته نه عنوان گفتن ما کاری به عنوان قبلیت همسالینا نداریم امام فرموده در روایت حالا در این جوزونی صفحه چند من اینو نمیشته بودم صفحه چنده صافین اول 5 4 5 صرف اخر هی سور ثم رکع قبل ان یرفع الامام راسه این قبل چه کارشونه این قبل موضوعیت داره یا نداره آی خویی میگه عنوان قبلیت موضوعیت داره به استثابه عنوان اثبات نمیکنه حالا چرا استثابه نناوب اثبات نمیکنه الان گفتیم این لازمه عقلیه ولی ادله دیگری هم داره ولی مشهور میگن نه مشهور میگن مترتبه بر ذات ثم ملک قبل ان یرفع ما یعنی ذات رکوع امام و ذات رکوع معموم رکوع امام مهرزان بل وجدان و رکوع معموم رو در حال رکوع امام با استصحاب اثباتش میکنیم با استصحاب با استصحاب اثباتش میکنیم حالا این استصحاب بخواد این اثباتش کنه این یقینی نبود که قبلن ما یقین نداشتیم رو کوه معموم رو کلا میخوام استصحابش کنیم این چطوریه به صورت تعلیقی داخل پرانتز تو ذهن بمونه که لو بقیل امام لادرکه المعموم استصحاب تعلیقیه یعنی اگر امام میمون این میرسید رسید استصحاب تعلیقی لو بقیل امام بیرو کوه لادرکه المعموم استصحاب تعلیقیه, استصاب تعلیقیه. استصاب تعلیقیه. استصاب تعلیقیه. استصاب تعلیقیه. نه هیچ راهی برای تذین استصاب نیست. چون حالت سابقه نداره. رکوع امام حالت سابقه داره ولی رکوع من که حالت سابقه نداره. من تازه دارم میرم. چی میخوام استصاب کنم؟ اگه میخوام استصاب کنم باید عدمش استصاب کنم. وجود نداره. لذا چرا گفتن استصاب کنیم؟ با استصاب اثبات کنیم؟ اشکالات اینطوری که تأمل کنید ولی برای تصحیحش من میگم این از باب استصحاب تعدییه. یعنی این شخص میگه اگر امام بمونه من بهش میرسم. با این نهر استصحاب تعلیقی نمازش درست میشه جماعتن و مشکل حل مه. لذا اینها ها قاعدن به اینکه موضوع ادراک لک آی آقای خویی میگه عنوانه اگر ذات باشه استصحاب جاری میشه و نماز درسته اگر عنوان باشه استصحاب جاری نمیشه و نماز باطله و بطلت سلاته که در اروم امده بود متینه حالا فیل جمله بایده مشروع من جمله نه بگن استثابه دیگه ما لازم نیست من موضوع منجز و ثابت باشه قبلا تعلیقا به خیال خودم اگر امام بمونه من بهش میرسه من دارم تکبیر میگم به خیالی که برسم نیگه دو بقیه امام به ادرک همین استثابه بهتر راه دیگه نداره بله میاد اینا هم به هم رسته است. با اونقا ما ریشه استثاب رو قبلا خوشکنیم. کندیم ما بر مرام مشروع این یک نمونه که اینو میگن استنباط ظهور ما اومدیم استنباط کردیم که این قبلیت آیا عنوانیت داره موضوعیت داره یا نداره که آقای خویی میگه دیگران میگن نه مترتب بر ذات و هیچ کدام در فهم عرفی نمی گنج استصحاب چیه حالا تا تفسیر نکنه کسی نمیشه. چه که این نمیشه بنابراین چه استصحابیه که ارم ازن ذهنیتی بهش نداره مگه نمیگن حجیت استثاب عرفیه عرف بسر استثاب تعدیقه رو نمیدونه مگه ما خودمون از عرفیستیم متوسیل نمیشیم لذا این یک مثال مثال دوم در صفحه 103 در صفحه 103 گفتیم محقق ناینی تصریح کرده به اینکه در چه موارد موضوع مرکبه در چه مواردی موضوع مفعله یک قاعده اساسی بر تطم از من ناینی من بگم و اون که ناهینی قائل شده که پنج صورت متصوره یک صورتش تغییده چهار صورتش ترکیبه اون یک صورت تقیید رو بگم بقیه معلوم میشه اگر حکم نسبتش به موضوعش خوب واقعا دقت کنن اگر نسبت حکم به موضوع نسبت عرض به جوهر خودش باشه میشه تَعید در غیر این صورت میشه ترکیب اگر نسبت حکم به موضوع بنویسن آقای من یعنی خبردگار ها دیدیم مثلا به دنیاشون برسن هر این منویسن بنویسید ها با مقایزه کنید دیگه نه اون داکه نمی نویسن. اگر نسبت حکم به موضوع نسبت عرض به جوهر خودش باشه میشه تبلید در غیر این صورت میشه تقیید یعنی اگه زیدون قائمون باشه ترکیب زیدون قائمون قیام عرض خود این جوهر ولی در قیل موارد در اجتماع دو جوهر دو عرض این جوهر با عرض دیگه این عرض با جوهر دیگه در این چهار صورت میشه ترکیب و فصل نافیه الایات در دوره قبلی و در قسمت استتام مفصل بحث کردیم از صفحه 237 تا 245 نه که یادم نرفته باشه بگاه ده سوفینن کلام حول ترکیب و تغیید به ماله مزید علیه فی مباحث الاستتام صفحه 237 تا 245 عرب با جوهر خودشه تفهید. این تغییده، غیر این باشه میشه ترکیب مثلا دوتا جوهر وجود زید با وجود امر چه ارتباطی به هم نداره علم امر با خود زید ارتباطی به هم بگی نداره اگر عرض با جوهر خودش باشه تفهیده و ترکیب، ترکیبه این مجمل مفصلش هم آدرس و همه رو بخوایم یکی از راهایی که تلماز ذهنشون بسته میمونه رفته رفته به اون نهایت خنگی میرسد به خاطر اینکه خیلی چیزها رو توضیح میدن توضیح بیش می از حد توضیح واضحات مخلی انسان ابلهش میکنه باید بمونه یه مقدار معلق بمونه فیلم های سینما های در بزنگاه ها میمونه باز میکنه دیگه چیزی نمیده حالا چی میخواد بهش میخواد بکشه یا نکشه معلوم نیست اینها ای که در درس‌های خصوصی متصفان رعایت نمیشه ما خیالمون همه چیزو بگیم خوبه نه اینا رو بذار تا فردا برم روش فکر کنن بعد مطالعه کنن تحقیق کنن خودشون اگه بفهمن بهتر از این که ما بگیم لذا قبلا نگفتم پنج درصدشو من میگم 95 درصدش به عهده خودتون اگر کسی کوتاهی بکنه دیگه خودش میدونه هیچ ارتباطی به من نداره چون من بیشتر از این شاید تکلیف نداشته باشم موضوع مرکب با مقاییت رو پس مراجعه کنید در اون جزوه ها و به هر از همه این نوشته ها من نوشتم پارسال یا در سال های گذشت نمیدم که این نوشتم پارسال یعنی امسال نیست چیزه به هم دیختر متصفی نمیشم فواهیت برن مراجعه کنن فهرست فواهیت فهرست تفسیریه برید مراجعه کنید ولی این نمیشن اون این روزنامه میمونه یا نه چی میدونه چی نمیشه ولی اینا که تو جزوه نوشتیم یه طوریه که طلبه منتقل میشه و بواحد کتاب خوبیه مطالب فنی زیاد داره منتها میشد اینو بازنویسیش کنم بهتر باشه قابل فهم همه باشه بهتر مراجعه کنه از و تقریرات آقای خوبی رو که از آقای نائینی نوشته اونو که اصلا نمیشه بفر دانینه فواید خوب منتاجی مقدار آشفتاد استراب داره ولی این جز نکاد استادم بهتر همه همه رو من دیدم که بیش از پنجاه تا کتاب من دیدم اینه که در جزو نمیشه مفسر و حدیث به نظر الان شما کلمات ناینی رو مراجعه میکردید ازش در نمیاد اون جوهر رو با عرض خودش فقط میخواد بگه از بیرون باید بشنید تا بفهمه چی میگه حالا این یک مسئله. مسئله دوم که باز مرتبطه به موضوعات مرکبه و خیلی مهمه موضوع مرکبه یا بسیط یا مقید بعد در مرکبات استثار جاری میشه یا نمیشه شما باید نملا پیدا کنی دیگه الان روید مبنا پیدا کنه که در موضوعات مرکبه قاید به جریان استصاب هستی یا نیستی مشهور میگن نمیشه تو آره استصاب خب مهمه آره شل اصوله و اگر استصاب رو از بقیه های معاصل بگیری این دیگه نمیتونن چی بگن استصاب خیلی مهمه و هیچ فرقی پیدا نمیشه مگر اینکه یه ده تا تا درش استصاب هست استصاب رو نمیشه گرفت ولی علاقه سمرش در سمر یعنی چی؟ تقریبی باشه تقریبی نا نگفتن ما هم چیزی نگفت از تو تو اما سکتن نگفتن ما نگفتیم به خاطر که گیر داره یه دی مشکل دیگه داره ما فقط مرکه رو داریم زبایات رو حضمش کنید از تو تو اما سکتن چون زهر مشوش شبهش این تقهید و ترکیب رو من صفحه از صفحه 107 هفت به بعد در رابطه با تقهید و ترکیب بعضی از چیزها رو نوشتم که خوب آقایم بدونم مسئله دوم که باز از موضوعات مرکبه یا مقید حساب میشه و اختلاف درش هست بله آره چون شرط همون به ترکیب بخوره و بیت به ترکیب می کنه میشه پس اختلاف بین اخباری و اصولی در چیه؟ در تشخیص موضوعات یکی شما این موضوع استنبات موضوع مثال دوم برای استنبات موضوع اینا مثال های میخوام بگم برای که محنوز باشه آقای نگه اینا چیه داریم میخونیم اختلافشون در اون مقام سوم که مقام ظهور استنباتیه شدیده و اخباری این مطلقا ممکرد دوم این مثال این حدیثه علالیده ما اخذت هتا توعدی. علالیت ما اخذت هستا تو عدی یعنی هر کسی مال دیگری رو برداره اخذ کنه زامن تا برگردانه علالیت ما اخذت هر چیزی رو برداره از مال مردم یا به دستش برسه زامن این موضوع یعنی نتون. این یعنی تعبیلش این میشه دیگه علیت رو نتون. حالا این ید آیا موضوع مرکبه؟ یا مقید یا بسیطه یقینا بسیط نیست چرا؟ به خاطر این دست رو که نمیخواد بگه حتما دست خارجی و عضو جوارح انسان که نمیخواد بگه شاید به حسابت ریختم بنابراین دست خارجی متنظر نظر نیست لذا موضوع بسیط نیست یعنی دست خارجی مراد نیست و اخباری هم اینو قبول نداره که حتما دست خارجی مراد باشه یقینا نیاز به تحلیل داره این ید باید به تحلیل بره یا به تحلیل استظهاری یا به تحلیل استنباطی شاید اخباری بگه این استظهاری ما میفهمیم که مراد از یاد یعنی تسلط استیلاه برمال دیگری ولی در استنباطش دیگه اصلا قاعد نیستن به اختلاف و سوریون علا که آیا این علیت موضوع مقید او مرکبون یعنی این دو جوزیه یا نه یک جوزه ولی قید داره دو جوزیه باشه الید بنابر ترکیب اینا این ها رو آمین بنویسن الید بنابر این که مرکب باشه این دو جزشه مرکب متشکل از دو جزء مقید یک چیز باقی اون دو جوزش اینه الاستیلا علامال قید به عدم رزال مالک میشه دو جز استیلا که وجدانی این الان موبایل من دست شماست استیلا خارجی وجدانیه محرز اون وجدان ولی عدم رزال مالک با استصاب اثباتش می کنه. از عدم رضایت مالکه بنابراین شخصی که دست گذاشته روی مال دیگری تان که برگردون یکی از این دو جوز مهرزون بلوشدان یکی هم مهرزون بتعفت چون از عدم رضایت مالکه دیگه بنابراین شخص آمن بنابر ترکیب شخص آمنه ولی بنابر تقریب بنابر تقریب مقبم داره مقبم جوهری داره نه ای که دو جزئی باشه به این به این به این تفسیره به این تفسیر که بگیم هر استیلایی از نظر اورفی عطوانیه شما دست مال دیگری بذارین اون خودش عطوانه دیگه چه قصد اتوان باشه چه نباشه شما بر از چی ماشین مردم برداشتی بردی بگی نه من میخواستم بزنم مثلا بارون بش نزن چرا کتاب منو بردی برای اینکه پارش نکنم اصل است... استیدا اصل استیدا بر مال غیر در ارتکازات اورفی عدوانی بنابراین ادوان در باطن خود استیلا، ادوان در هر استیلا است شما اگه دست و مال دیگری بذاری ظاهرش اینه که ادوانیه اینکه که ادوانی نباشه باید اثبات بکنیم و الا از که این ادوانیه دیگه شما دزدیده بودیم شما میخواستی قصدش کنی، شما میخواستی زور بگی. اینطوریه طوریه خود باطن استیلا ادوان درش هست اصلا کاری به رضایت مالک نداریم اصل اثباتیت بر مال دیگری متزمن ادوان به ارتکازات و قلایی، بنابراین موضوع مرکب نیست موضوع مقید به یک قید جوهری و مقوم هر استیلای مزمنه کل استیلاعی مزمنه و این رو آیاتی داره خیلی شریفه در زیل الامین و لایزمن توضیح دادم در دوره قبل که الان دیگه فرصت نیست بگم الامین و لایزمن برخلاف مشهور یک تفسیری براش گفتیم که خیلی فنمیتره و در اونجا این میاد که هر استیلای مزمنه میخواد عضوانی باشه؟ میخواد عضوانی نباشه لذا ما قبول نداریم امین زامن نباشه شخص امینم زامنه شخص امینم زامنه ولو امین بوده حالا پس این قاعده چی میخواد بگه عدم این لا یوزمن لا يزمن؟ یا لا این چی میخواد بگه اونو تفسیرش کردیم از باب عدم الاختزاء یا اختزاء العدمه اونجا توضیح دادیم ولی من حسب مجموع استیلا مزمنه میخواد امانی باشه میخواد ادوانی باشه بهز این قید درش هست و حالا چه قلمه تنهید و ترکیب است حالا اونها هم که ترکیبی هم گفتن زامنه ما هم که تغییری بشیم میگیم زامل دیگه چه فرقی از چه ازن که باشه. چه که باشه چه فرقی داره نایینی هر بار برای چی میگه خود ناینی از هرش رو مترتب نکرده ولی حقوق علم حقوق مثل الوسیط سنحوری اینها مترتب کردن الوسیط از کتابهای مهم حقوقی جهان اسلام متخصانه در حوزه ها جایی اصلا نداره سن کسی اسمشون نمیشنوه بحث نمیکنن متخصانه به اون ما در مکاسب منحصر میشه به لفاظی در سطوح عالیش لفاظی اون نداره ولی حقوقدان بزرگی مثل سنهوری که هم به فقامه مسلطه هم حقوقدان معاهل اسلامیه مثلا بینزیده به نظر من کتابش همینطوری میمونه کسی مراجعه نمیکنن کنون که مراجعه میکنن افکار دانشگاهی دارن حالا در اونجا گفتن سمره مترمتن میشه. بین ترکیب و تقیید. البته به این معنی نگفتن. اونا یه چیز دیگه گفتن. ولی لبه مطلب اونا میدونن ما نمیدونیم. آنها قائل شدن. بر قول به ترکیب. اگه شما فضعی شدید انشاءالله. قائل به ترکیب علیت شدید. زمانت ضمانت حقوقیه. کسی جرمی انجام نداده. ولی اگر قائل به تقیید علیت شدید شخص هم مجرمه و هم اینجا بنابراین اینجا زمانش کلیفریه اونجا زمانش حقوقیه و فیه آیاتون بینات در فقه مکاسه تبلنگ گفتیم بعداً میگیم و دو روش فکر کنید این دو موضوع مسئله سوم که داده. داده وقتی کیفری باشه یعنی خیلی از دیگه به دهکاره جرم هم انجام داده اون باید دادستان رضاید بده چرا کیفری کی نه نه خیلی <تصف1> <تصف1> <تصف1> <تصف1> <اللوم> با نه حالا دیگه تغییرات داره به این چیز نیست ذهن خراب میشه نه اونطوری نیست حالا میشه انسان بگه مثلا کیفری انسان مسئولیتش انجام نداده یا انجاری کرده ولی خب به این نقد ساده مرتبط نیست. مسئله سوم که اونم خیلی مهمه که این اخباری چی میخواد بگه، اصولی چی میخواد بگه؟ اخباری میخوام بگم, بگم قولشون باطل عملن. ما کار به مناقشات ثبوتی نداریم. بیا بگیم نه، امین از تراباطی اینطور گفته و نمیدونم سید تیم باتون باجادالدین اینطور گفته و مؤسس بهرانی چی گفته؟ واسه اسماعیل صدر چی گفته؟ به ما چه؟ منتها در مقام عمل گیره. یعنی مچین ها رو در فقه میگیرم و اینجا در اصول ما حریف این اخباریین چون اصلی اخباری اصلی اصلی اصل هست نمیشه از این بزنیم اخباری اصلی با اینه نمیشه در بی در فقه مچین ها گرفته میشه در رابطه با آیه خمس یجول خمس فلقنیم این خمس قرآنی نسبت به غنیمت اخباری چی میخواد بگه میخواد بگه اختصاص به غنیمت داره یا موضوع رو باید بشناسیم یعنی موضوع رو استظهاری استنباتی قبول داره یا قبول نداره یقینا باید قبول کنه و اینا فتاوایی نامیدن مخالف با فتاوای اصولی نیست اونها هم به خمس ارباح مقاصد ما هم قائلیم بنابراین آنها در اختلافشون هیچ سودی نبوردن حالا آیه خمس موضوع خمسیه موضوع خمس و یک مطلبی از سیدی از دی بگم و شما رو بسند میدن به مقدساتتون هر چیزی برای تو مقدسه نه قرآن و خدا بسی زن برای مقدس باشه به هر چیزی که برای تو مقدسی کنید. وستربت کلماتون فیزاله یعنی در تحدید موضوع خمس صفیصد رو هم نوشتم مقرد آقاین گوش کنند دو دقیقه من بگم آیا موضوع خمس خصوص فواعد مقتصبه هست یا مطلب فاعده ولومن غیر اکتصابه مثل هبه و هدیه و عطیه یا ولومن غیر اختیاره مثل ارس کدومشه وستربت کلماتون ویزاله؟ بلاجن نفسی الیزیدی جزما به وجوب فی اول اول در تکسبات گفته واجبه فتوای به وجوب داده به عوض تکسبات وحدها توجوباً در اون قسم دوم که مطلب فایده باشه مثل بعد یک واجب کرده و اول مستفاد یعنی نه تکسبات بلکه فواعد و مستفادات وحدها استحباباً هستانی ولی احتیاط استحبابی کرده در مطلق فایده مثل عرص در عرص گفته مستحق بینه که خونسه شده در دوبومی هم فتوا نداده احتیاط بازیب در اولی هم داد حالا استقصال اقوال هر قول اول اینه که موضوع خونسیه اکتصاب مهنی یعنی اکتصابی که صنعت انسان باشه نه اینکه به من بیا یه چیزی بدم. فولی به شهریه بریزن به احساب های ش اقتصاد مهنی یعنی صنعت باشه کارم باشه نه کار ما که کار بیکاریه اینکه اقتصاد نیست دومین موضوع مطلق اقتصاد سومی مطلق استف... استف... استفادات یعنی حصول فاعده اختیارم و چهارمی مطلق فائده اما قول اول میخوام بگم آقایان مراجعه کنن به چیزی که نخوندید یقینا در شرح لمه حاشیه قسمت خمس قول مرحوم آقا جمال خانساری اکتصاب مهنی و نصر بایدال خانساری بیهاشیت روزه و حوک از آنیجا. گفته اکتصاب مهنی باشه خمس داره اکتصاب مهنی و صنعت انسان و شغل انسان نباشه پایده نداره بنابراین چیزها که اتفاق میفته تقسیمی میدن ولو یک میلیونم بدن خمس نداره که شغل نیست بنابراین زنی که حقوق بیمه شوهر مردش رو میگیره اکتساب مهنی نیست خمس ندار و امثال این ها این حاشیه یه روزه رو مال آقا جمال آقایم پیدا کنم مراجعه چه چیزی در چه زمانی از شما فوت شده بعد خود این قول اول شاید دو سه روز تون میکشه ما بخونیم ولی چون مفیده آقایم تعمل کنم را سخه چند جوزوها رو داریم آقای اشکر بیشه بازیم آقای شما ik ga dan voor een minuutje en dan een momentje dan gaan we starten dan gaan we samen naar de volgende stap en dan gaan we